از آن روز که به این دنیا افتادم گم کردم و هر چه گشتم نیافتم تصویرش را در عمق فروبسته و پاک خیشتنم در قابی از خود خودم از عزیزترین و خوبترین تکههای جانم گرفته بودم و به یادگار آن ایام نگاهش میداشتم و چون از یافتنش نومید بودم نگاهم را از عکسش بر نمیگرفتم و چون از یافتنش نومید بودم، گوشم را به صدای هیچ پایی نمیبستم و چون از یافتنش نومید بودم، انتظار نمی کشیدم چشم به راه نبودم، باور نمیکردم تردید نمی کردم چه؟ یقین داشتم که او را نخواهم یافت و یقین داشتم که او نخواهد آمد و من وفای او را عهد بسته بودم و با هیچ فریبی بر آن نمیشدم که آن را بشکنم هیچ پیامی مرا به بخیش نمیخواند که میدانستم پیام او نیست و از این رو دیگر به بیرون نمیاندیشیدم و در انتظار وحی نبودم سر از درون خیش بیرون نمی کردم که تصویرش در درون بود و من رنج تنهایی و قربت و بیگانگی را در درون فراموش می کردم که در بیرون با همه تنها بودم که در بیرون سکوت بود و قربت بود و بیگانگی و ناآشنایی و در درون تصویر او بود و در درون تنها نبودم و این بود که از هر دستی که حتی به مهر می کشید تا مرا از اندرون به آورد بیزار بودم و از هر که مرا رها میکرد و به خود وا میگذاشت ممنون و چنین بود که همین دشمنانم را و ناآشنایانم را در دل بیشتر از دوستانم و آشنایانم دوست میداشتم یعنی کمتر بیزار بودم که با گفتگوی خود نوازش خود و تسلیتهای خود و تحمیل خوشیها و خوشبختیها بر من مرا از تنهایی بیرون میکشاندند این بود که به درون خو کرده بودم مردی در خیش این بود شکل من که همه آن را می شناختند در بیرون چیزی نداشتم کسی نداشتم دیگران خیال میکنند چیزی دارم و چیزهایی و بهدان دل ام. دیگران خیال میکنند کسان بسیار دارم و از این سر دنیا تا آن سر دنیا مرا میشناسند و مرید منند اما بیرون را سراسر متروک می دیدم و درونم را پر و آباد که تصویر او که با من سخن می گوید به من می با من هست در درون بود این است هندی بودن، این است سامی نبودن، این است در خود کاویدن و کاویدن و یافتن می پرسید و با تعجب و انکار می پرسید که من، با کاوش در درون میتواند به یک به آتریس برسد؟ آره می توان رسید این است به آتریس این است آن من طلوع کرده که از درون سر میزند و می خندد و سراسر خانه را روشن می کند و گرم و سرشار از جمعیت و انس و آشنایی و لذت این است مخفی ماندن در خود کمین کردن به کمین نشستن در پس این من پیدا و ساکت ماندن و پاسخ ندادن و منتظر نماندن و ناامید بودن و یقین داشتن و هندی بودن و دل بستن به نیروانا عشق ورزیدن به بئاتریس مرده که نیست اما تصویرش در اندرون دانته هست و رشد میکند و زنده زندهتر میشود و دانته را به سفری بزرگ میبرد و از برزخ حیات متوسط به بهشت معود میبرد این است به اطریسی که نه ساله است و به دانته شاعر پنجاه و چهار ساله نمیگوید که تو پیری و جوش و خروش مرا نمیفهمی که دیگر آن به اطریس نه ساله که در دانته بزرگ میشود جوششش است نه از سر مزاج او در آن هنگام که کودکی پایان میگیرد به جوش نمیآید. هنگامی که عقل از رفتن و جنبیدن می ایستد مبعوص می شود و پیر افتاده را هم با خود می برد. به زنده را نمیبرد، باید راهش برد. به آتریس نه شاعر هفتاد ساله که یک نویسنده چهل و سه ساله را پیر زمینگیر میداند که از رفتن با او عاجز است. به مرده از نیم قرن اختلاف به خشم نمی آید. چه؟ او به تقویم نمی‌اندیشد و شناسنامه در روحی آنچنان اثر نمیگذارد. به آتریس زنده ده ساله را چنان دور می که به فقان میآید بگذاریم و من که عمری سر به درون برده بودم و بر روی تصویر به آتریس خیش خم شده بودم و از وحشت بیرون سر از روی تصویر او بر نمی داشتم چون دانته با او سیر آفاق و انفس می کردم. چه سفرهاست در درون و چه جمعیت هاست در خلوت تنهای خیش و من این خلوت را دوست می و بدان چنان مشغول بودم که در زیر این آسمان خود را از هرچه و هر کس بر روی این زمین بی نیاز می یعس مطلق و سیاه و سنگین در بیرون، امید مطلق روشن و سبکبال در درون و این است که سالیان پرهیاهوی عمر گذشت و این کبوتر که سر به زیر بال خیش فرو برده بود با آسمانی ترین نغمه ها و زیباترین صداهای پر پرواز ها و شورنگیسترین ترین ها و ملتهب ترین پیام ها سر بر نکرد که میدانست او اون نیست او دیگر نخواهد آمد او را نخواهد یافت. مثل اینکه او که سالها و قرنها با هم زندگی میکرد ایم و با هم از یک کوچه گذر ایم و با هم کودکی را گذراده و در یک خانه بزرگ شده ایم همانجا ماند و من تنها به این دنیا آمدم. تنها زاده شدم و در انبوه این خلایق جز چهرههای قریب نیست. اینها هیچ کدام اهل آن دیار نبودند اهل همین جایند قیافه زبانشان رفتارشان و زندگی کردنشان به مردم کشور ما نمیماند و من چه سخت تنهایی و غریبی را در اینجا حس می کنم. اینها با من آشنا نیستند زمین و آسمان اینجا هم به چشمم آشنا نمی آید. و من همچنان غریبی که در کشوری دیگر و میان مردمی و ملتی دیگر زندگی را به سر برد، نه یعنی زندگی او را به سر برد با مردم در میامیخدم. با زبانشان حرف میزدم، میگفتم و میشنیدم و در مراسمشان شرکت میکردم و رفتارم رفتار آنان بود و زندگیم را به مختزای آن جامعه و آن سرزمین ساز میکردم. و تا قربت سخت می میشد و تنهایی بر من حمله میبرد بیدرنگ خود را به خانه میرساندم در آنجا با تصویر او که بر دیوار زده بودم به زبان خودمان حرف می زدم با او معاشرت می کردم با او بودم و غم تنهایی و دوری و بی زبانی و وحشت سکوت را در برابر تصویر او در خانه خیش فراموش می کردم و نیرو می گرفتم و باز بیرون می آمدم و زندگی با آنان را از سر می گرفتم و همینطور این زندگیم هم شده بود پیغمبرم گفته بود که با مردم باش اما با مردم مباش. وگرنه همچنان که او میگفت گفت دل به تصویر او مشغول و جان در یاد او ها ویخته دوست داشتم گوشه ای بنشینم و به گوشه از این آسمان بنگرم و به نگریستن ادامه دهم تا آنگاه که خدا جان مرا بستاند بمیرم اما چه کنم که باز همچون او معمور بودم که با خلق درامیزم و با جمع زندگی بسربرم. این بود که زندگیم در این کشاکش گذشت یک پایم در درون دل در بند تصویر او یک پایم در بیرون سر در بند تمشیت خلق بودنی این چونین آواره یک بار حادثه غریبی اتفاق افتاد. حادثه هرگز خود را چنین نیافته بودم. روزی در انبوه خلق به قیافهای برخوردم که نمی شناختمش. نیز مرا نمی شناخت. رد شدیم. برگشت نگاه هم کرد. برگشتم نگاهش کردم. رد شدیم. برگشت نگاه هم کرد و من کمی درنگ کردم. اما بر نگشتم و نگاه نکردم. رد شدیم. این چه بود چه کار داشت؟ این از همان آدم نیست که گاهی بیخودی میچسبند و پرحرفی میکنند و احوالپرسی و وراجی؟ چرا این هم از همان لیوانهای نمک میوهست که یک بار جوش میکنند و کف میکنند و دل آدم را میلرزانند که الان سر میرود الان میریزد به سر و صورت آدم پشنک میکنند و دوتا تا پف که کنی فرو مینشینند و چند لحظه بعد میبینی لیوان خالی شد و تهش کمی آب مرده لعابی مایهی زرد رنگ مثل چرک سرد و بیجوش و خروش ماند و دیگر هیچ بلش کن برگشت نگاهم کرد ایستاد و همچنان مرا می نگریست متوجه شدم به رو نیاوردم رد شدم صدا زد گوش نکردم داد زد خودم را زدم به آن راه یعنی که نمی پیش آمد. دارد میآید نه ولکن نیست. تونت کردم که بروم. کار داشتم. کارهای زیادی خیلی ها منتظرم بودند. بیتابانه چشم برا بودند. تونت کردم. نشد. دامن قوایم را گرفت که صبر کن. صبر کردم. با دنیایی از بیزاری، دلخوری، نگرانی و خشم از این مزاحمت. باز گرفتار مزاحمت تازه‌ای شدم. باز مدتی از کارم باز میمانم خیالم را مخشوش میکند ناراحتم میکند خدایا از گیر این چجوری خلاص شوم چه میگویی چه فرمایشی دارید من شما را میشناسم خوب میشناسم میدانم اهل اینجا نیستید قریبید اینطور نیست من شما را دیدم. ندیدم اما میشناسم من اهل این شهر نیستم با مردم اینجا نمیجوشم به این شهر اونس نمیگیرم مدت ها دنبال کسی مثل شما میگشتم که بفهمد غربت چیست از جنس مردم اینجا نباشد من میخواهم از اینجا بروم با هم برویم مرا هم با خود ببرید گفتم ببخشید اشتباه میکنید خیال میکنید من از این شهر و مردم این شهر نیستم من به شهر و دیار دیگری نمیخواهم بروم من از این شهر می روم، اما به شهر دیگری به میان مردم دیگری نیست من آدم تنهایی هستم بی مقصد و مقصود نه در انتظار کسی نه نیازمند چیزی راه من بیراه است. به صحرا میروم بیابان و کوه و سنگ لاخ و خارستان است. هوای آنجا سردست و طوفانیست با من میایید شما هم سفر من نیستید شما خیلی نازک و جوانید شما زیباتر از آنید که از بی کسی رنج ببرید و محبوب تر از آن که اقده کم بود نوازش دردمندتان کند شما برای برخورداری و ترقی هیچ چیز کم ندارید طبیعت شما را برای آسایش و خوشبختی ساخته است خیالات موهم و دردهای بیدردی گمراهتان نکند همینجا بمانید خانه گرم و بستر نرم را از دست مدهید با من میایید پاهاتان مجروح می شود سرما خورده میشوید طوفان در همتان میشکند سر و صورتتان خونی می شود کجا میایید از او هی اصرار که نه من میایم و از من هی انکار که میا مرا تنها رها کن دست بردار آنجا وحشتناک است، جهنم است، گرگهار است، تو پوپک نوپرواز آشیانت را ترک مکن، هی hey, اصرار و هی hey, اصرار و من هی hey, انکار و هی hey, انکار نشد، بیتابی می کرد، سخت پریشان بود، وحشت قربت سخت آزارش می‌داد. و من که هرگز دوست نداشتم در سفر کسی هم باشد و تنهایی هم را آشفته کند، وانگهی به جایی نمیخواستم بروم فقط میخواستم از شهر بگریزم که تنها باشم، با تصویرم، با خودم، بی دیگران باشم، اینجا نباشم، نمیدانستم چکنم، نمیدانستم در پاسخش چه بگویم، از اینکه یک قدم با من باشد میهراسیدم از اینکه یک لحظه با او بیستم و حرف بزنم بیزار بودم او هم تنهاییم را به هم میزد، هم از کارم میانداخت. چه کنم خدایا این چه گرفتاری است او همچنان میگفت و میگفت و هی hey, از قربت میگفت و از بیگانگی و از گریز و از سفر وحشت داشت از پیش من برود نمیخواست به میان مردم برگردد مثل اینکه همه خداحافظی هایش را هم کرده است آماده آماده ساکت ماندم چه می گفت؟ چه می توانستم کرد؟ بیتابی ها و زاریهایش مرا به فکر انداخت که چرا؟ چون این آدمی که به آدم خیلی خوش می ماند، چرا غمگین است؟ چه شده است؟ گوش می دادم. اما ساکت بودم اما در چهرش نمینگریستم؟ و او همچنان حرف میزد و اصرار و بیتابی. از بس میگفت و کلمات را همچون گلوله مسلسل بر رویم پرتاب می کرد که من گوشم به او بود اما رویم به او نبود. من اصلا عادت ندارم کسی را نگاه کنم. خیلی از کسانی را که هر روز با آنها سر و کار دارم و حرف میزنم و حرف می هنوز ندیدم. چشم من هیچگاه در صورتها خیره نمی شود. نگاه نمی کند. لزومی ندارد که نگاه کند، مگر دنبال چه می گردد؟ چه میخواهد که ببیند هست یا نیست؟ هی hey, می گفت و بیقراری می کرد و زاری که من هم میآیم و من گوش می دادم و ساکت بودم و سرم در گریبان خیش و چشمم بر روی همان تصویر. مدتی بر این حال گذشت و ناگهان ساکت ماند. آه چه شد؟ سرم را بالا کردم، نگاه کردم، درست نگاه کردم، نگاه کردم تا ببینم چرا حرف نمیزند، چه شد که از گفتن ماند؟ نگاه کردم، در او خیره شدم، چنان مشتعل بود که کلمات در نیمه راه میسوخت و خاکستر میشد. حرف می زد، اما حرفها آتش می گرفت و دود میشد. شد، حریق مدهشی را در سراپای او میدیدم. چشمهایش که نگاه خود را گم کرده بودند و اشک داغ هر تصویری را از آنها میزدود. دو آینه صاف و بینقشی شده بودند که از آنجا من برای نخستین بار روح کسی را به چشم خود میدیدم قلب کسی را به چشم خود میدیدم هر دو ساکت شده بودیم او میسوخت ذوب می, سخت, زوب می شد و من تماشا میکردم ناگهان. از پس حاله آتشی که او را در خود میگداخت چهره مبهمی را دیدم که گویی در پس ابرها پنهان است و پنهان نیست سکوت در فضای اتاق میلرزید و من همه تن چشم شده بودم این چهره او نیست مثل اینکه من او را قبلا دیدم مثل اینکه او را جایی دیدم چه سکوت فسیحی من او را نمی شناسم. مثل اینکه چرا؟ مثل اینکه خیلی با من آشناست مثل اینکه با من خویشاابنده است مثل اینکه یک وقتی نمیدانم کی؟ کجا؟ با هم آشنا بوده ایم حرف زده ایم با هم بوده ایم؟ آه مثل اینکه با هم زندگی می کرده ایم خواستم بپرسم شما از کجایید؟ ما همدیگر را قبلا جایی ندیده ایم نکند این اهل همان شهر و ولایت ما باشد. باز احتیاطهای ووسواآیز نگذاشت بپرسم. سکوت چه خوب حرف میزد و ما گوش میکردیم و خاموش بودیم. او همچون یک تصویر شده بود. عکسی بر روی یک تابلو خودش را نمی توانست بپوشد بیاراید پنهان کند. یک مجسمه شده بود مجسمه ای که حرکت داشت التحاب داشت اما این التهابها ها از خودش نبود ارادهش نبود امواجی وحشی و نامرعی او را به تلاتون می آوردند. و من در این لحظه فرصت عزیزی داشتم که او را خوب ببینم نگاه کنم هرچه بیشتر خیره می شدم سابقه گنگ آشنایی ما خیشاوندی ما روشنتر می شد زباندارتر می شد می میگفت چشماش که اکنون از نگاه شسته شده بود چشمانایش که چنان نیست که نگاه مرا در خود نگاه دارد بگیرد و در ته بسته خود باز دارد به رنگی است نمیدانم چه رنگی چه رنگهایی شاید هم هیچ رنگی اما به رنگی است که نگاه مرا در خون نمیگرفت از رفتن بازش نمیداشت مثل اینکه که امغ ندارد یا همچون آسمان است و در آن کشش و بیکرانگی ابدیت هست یا نه آن سویش بسته نیست. به هر حال هرچه هست و هرچه بود نگاه من از این دو پنجره باز رد شد و آنچه را که در این دنیا نمیتوان دید و هیچ چشمی ندیده است دید. روح را دیدم. خود روح را. روح را دیدم که به چه رنگ است. به چه شکل است. چیست؟ پروانهی به رنگ طلا آتش با چشمهایی بنفش توقی زمردین و, و بالهای آبی رنگ دیدم که چون پرندهی زیبا وحشی و مجروح دیوان خود را به در و دیوار قلب و رگ و بدن می زند تا قفص را بشکند و رها شود روح او را با همین نگاه چشم سر با همین نگاهی که درختها و آدمها و کتابها و کوه‌ها را می‌بینم دیدم در همین دنیا توی یک بدن نمیدانم در چه فضای گیج و خیال رنگ و آوری غرق شده بودم شگفتی و هیجان تماشای روح در آن حالت مرا چنان از خود بیرون آورده بود که برای نخستین بار چیز دیگری را هم احساس کردم آنچرا که در آن عالم دیگر پس از مرگ هم کسی احساس نمی کند، نمی تواند بکند و شاید تا حال جز خدا کسی احساس نکرده است. احساس کردم. عدم را احساس کردم. با همین پوست و گوشتم لمس کردم. آری، عدم را. نیستی مطلق را لمس کردم احساس کردم همچنان که نرمی آب را لمس می کنم همچنان که وزن دوست داشتن را احساس می کنم. سکوت همچنان وفادار مانده بود و مرا در این معراج جادویی یاری می کرد. به خود آمدم نگاه هم را از عمق او بیرون کشیدم با چه سختی و فشاری بر چهرش خیره شدم او همچنان بی اراده تسلیم تماشای من بود، در زیر سرنگشتان اندیشه من تشریح میشد و همچنان که شناوری بی حرکت بر روی آب خود را رها می کند و به دست موج می سپارد بازیچه نرم و فرمانبردار احساس من شده بود، چنان که گویی در بستر نرم و آرامی به خوابی امیخ فرو رفته و نگاه حیرت زده من که بر او مسلط بود و آزادانه میگشت، هر لحظه خطوط نامرعی آشنایی و خیشاوندی تازه را کشف میکرد و خبر میداد. من این چهره را خوب می شناسم است می شناسم هرگز چهرهی تا این اندازه با من معنوس و شناس نبوده است اما من در اینجا او را ندیده بودم پس از کجاست؟ ما کجا و کی هم را شناخته ایم؟ آه این چهره این چهره کمی با آن تصویر چون این چیزی نمی شود اما پس از کجا می شناسمش؟ این قیافه یک خیشاونده است این چهره از آن مردم این شهر نیست او اهل این سرزمین نیست خودش میگوید قریب است راست هم میگوید قربت از چشمهایش از نگاهش میترود اما خیلی آشناست ما پیش از این با هم دوست بوده ایم همدیگر را خوب میشناخته ایم مثل اینکه ها با هم بوده ایم اما فراموش کرده ایم کی کجا این چهره با آن تصویر چون این چیزی نمی شود اما اما وقتی با هم حرف میزنیم احساس می کنیم که این حرفها ها دنباله گفتگوهایی است که خیلی پیش ها با هم داشته ایم هر وقت با هم حرف میزنیم هر وقت به حرف زدن آغاز میکنیم، حتی همان لحظه اول که شروع کردیم به حرف زدن مثل این بود که اول صحبت نیست بقیه صحبت است مثل این که این چهره با آن تصویر یک نوع نه. چون این چیزی نمی شود اما هر کداممان که حرف میزنیم مثل اینکه داریم تکرار میکنیم مثل اینکه همین حرفها را یک بار دیگر خیلی پیش نمیدانم کی و کجا باز هم شنیده ایم همه چیز هیچ چیز در این آشنایی امسال برای ما تازه نیست همه چیز برای ما یک نوع تجدید خاطری جلوه می کند این چهره؟ خیلی با آن تصویر نه مثل اینکه من دارم اشتباه میکنم دچار یک مالی خولیا شدم. چه وحشتناک کس اگر اشتباه کنم من خیلی کم اشتباه کنم ممکن نیست اشتباه کنم مگر بیقراری ها و اشتیاق بیتاب او از آن نیست که بوی آشنایی شنیده است مگر کشش خویشاوندی نیست که او را از این قربت بیکرانه به این ساحل کشانده است مگر او یک پرنده مهاجر نیست که به بوی بهار از حراس برف و سرمایه زمستانی می پس چرا این پرستوی تنها در اسفند ماه لانش را رها کرده است؟ چه توفانی او را به اینجا افگنده است؟ اما او مثل این که چون این احساسی نمی کند. پس چرا این همه مضطرب است؟ مگر او هم در چهره من این آشنایی دیرین را نمیخواند. مگر برای همین نیست که با این التهاب در من خیره شده است نه دیگر من واقعا از شما بدم میآید انتقامم را از شما میگیرم شما پیرتر از آنید که شور مرا دریابید من میروم به اردو نمره بیست بگیرم در اردوی ورزشی یا هنری اول میشوم میخواهم از زیباییم استفاده کنم من میروم حتی بدون شما لش آن خودم را به شما تقدیم میکنم دیگر سراغ شما را نخواهم گرفت شما در دنیای کلمات تنها بمانید در فضای خیال تنها نفس بکشید ترس شما را این چنین مغرور کرده است بینیازیتان از ضعف است من در حاله نمی مانم میخواهم زندگی کنم شما با به اطریس مرده در هیچستان اساتیر عشق ببرزید در صحرای خالی برزخ میان این دو دوزخ وجود و آن بهشت عدم آواره بمانید محبوب من آن نیمه زنده و گرم و راستین دیگر من به جزیره لکروه بازگشته است سال هاست منتظر است بیقرار رسیدن من است لاکروا جزیره بودای اوپا است. تشبیه و استعاره و مجاز و کایی را بانجا با راه نمی دهیم. به آنجا میگریزم، پناه میبرم تا با او باشم زندگی کنم. در خیابانها شبها پرسه بزنم شانه به شانه رودخانه ای که از کنار خانهمان میگذرد قدم بزنم. در انبوه جمعیت و فریاد و التهاب و رنگ و نور و نشاط و حرکت گرم شوم. روی ترس کافه ها بنشینم، بیفتک گاز بزنم، دوش بگیرم، برای تماشای آتشبازی بر شانه های او بپرم. سردا باید به سفر خارج بروم بروم یک دو ساعتی بخوابم خیلی خسته شدم درست خطها را نمی بینم انگشتانم از فرمان من سرپیچی می کنند این هم ای بود پایان اما امروز این چونین روشن و سبک می رسد نومیدی هنگامی که به مطلق می رسد، یقینی زلال و آرام بخش می شود چه قدرتی و است در ناگهان هیچ نداشتن استراب ها همه زاده انتظار هاست هیچ گدویی در راه نیست در این کبیر فریب سرابی هم نیست جاده ها همه خلوت راه ها همه برچیده و چه می گویم؟ هستی گردوی پوک به انتهای همه راه ها رسیدم جهان سخت فرطوت و ویرانه است چه کنم باز می گردم. رجعت بهشتی را که ترک کردم باز میجویم دستهایم را از آن گناه نخستین اسیان میشویم. همه قورفه های بهشت نخستینم را از خیشتن خیش فتح میکنم طبیعت را تاریخ را جامعه را و خیشتن را در آنجا من و عشق و خدا دست در کار توت خواهیم شد تا جهان را از نو ترک کنیم خلقت را بار دیگر آغاز کنیم در این ازل دیگر خدا تنها نخواهد بود در این جهان من دیگر قریب نخواهم ماند این فلک را از میان بر می داریم پرده غیب را بر می داریم ملکوت را به زمین فرود میآوریم. بهشتی که در آن درختان همه درخت ممنوعاند جهانی که دستهای هنرمند ما معماران است 1348 و